كما ملئت زلمن و جورا اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و نستعینه و ونؤمن و و به و عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیاoute اعمالنا و نشهدو الله اله اینلا الله وحده لا شريك له و ونسلم و حبيبه و نجيبه في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذیر نعمتيه سيدنا و نبینا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد صلوا عليه وعلى الطاهرين المعصومين المكرمين الهداه المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله وسيكم ونفسي بتقبل الله قال مولانا أمير المؤمنين علي بن عبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين ان التقوا في اليوم الخيرز والجنه وفي قد الطريق الى الجنه مسلكه आवाजهم و سالكه رابه بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی دعوت میکنم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه و السلام در کلامی و سخنی فرمودند تقوی برای امروز شما و دنیای شما پناه و سپر محسوب می شود و برای آخرت شما و برای اون روزی که هنوز نیامده یعنی قیامت راهی است به سوی بهشت، انسانهای متقی در دنیا تقوا، پناه و سپر آنهاست در مقابل گناه و در رابطه با قیامت و صحنه قیامت تقوا راهی است به سوی بهشت که ازرت میفرمایند جاده آن صاف و روشن است. و برای کسی که این مسیر را طی کند سود دارد و پرفایده است در خطبه اول پیرامون فریزه امر به معروف و نهی از منکر سخن می گفتیم در آخرین ای که بحث را مطرح کردیم پیرامون زیانهای اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر بود. به پنج زیان اجتماعی اشاره کردیم. امروز هم به چند آثار زیانبار اجتماعی در رابطه با ترک امر به معروف و ترک نهی از منکر اشاره می کنیم. ششمین اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه عبارت است خرمت شکنی در یک ای که امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود و همچنین جسارت نسبت به انجام گناه انسان ها جری می شوند انسان ها خرمت شکنی می کنند چون سخن از دین مطرح نمی شود نقش بازدارنده امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح نمی شود لذا چنین این آثاری خواهد داشت رسول گرامی اسلام می فرماید چهار چیز در رابطه با گناه وجود دارد که از خود گناه بدتر است بعد حضرت به این چهار نکته اشاره می کند اولین نکته میفرماید الاستحقار و دومین نکته میفرماید والافتخار سومین نکته والاستبشار و چهارمین نکته والاسرار گای از اوقات انسان گناهی را انجام می دهد ولی اون گناه را کوچک می شمارد. میگه اتفاقی نیفتاده مسئله پیش نیامده در مقابل دیگرانی که این همه گناه میکنن من گناهی نکردم نفس کوچک شمردن گناه رسول گرامی اسلام میفرماید از خود گناه بدتر است لذا وجود مقدس امام باغر علیه و السلام تعبیر بلندی دارد میفرماید لا مصیبته کستحانتی که به ذم بالاتر از کوچک شمردن گناه نیست آدمایی که گناه میکنن و بعدم توجه میدن چرا گناه کردی؟ میگه بابا خبر نیست تو گناه را ندیدی. ای این کوچک شمردن از خود گناه بدتره بنابرای تعبیر پیامبر اکرم دو ول افتخار افرادی گناه میکنند و میبالند به گناه کردنشون افتخار میکنند به گناه کردنشون و خلاف کاریشون. مثلا گناه کرده تو این جلسه تو اون جلسه به عنوان یک کار هنرمندانه تعریف میکند من چنین کردم چنان کردم یعنی روایتگری از گناه روایتگری از گناه و صحنه گناه را برای دیگران توصیف کردن، به افتخار کردن به بالیدن به گناه، پیغمبر می‌فرماید این از خود گناه بدتره. رفته مرتکب گناه شده شدی، بین خودت و خدا این افتخار کردن به گناه چیست؟ و سوم و الاستبشار ابراز شادمانی کردن نسبت به گناه انسانی که مرتکب گناه شده شادمانی می کند کرده سر کسی را کلاه گذاشته کاری انجام داده به برادر مسلمانش ستمی روا داشته اظهار شادمانی میکنه میگه یه آدم سادهی پیدا کردیم اون چه توانستیم برو بار کردیم تو گناه کرده ای ظلم کرده ای خیانت کرده ای این اظهار شادمانی کردن یعنی که و چهارمین نکته که پیامبر اکرم میفرماید این هم از خود گناه بدتره اصرار بر گناهه گناهی را مرتکب شدی منطقه مطلب بش میگن آقا چرا گناه کرده میگه خوب کردم از این به بعدم میکنم تازه راه گناه پیدا کردم با این ادبیات در رابطه با گناه صحبت می کند لزاست که اگر امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه دینی رها بشود جامعه فاصله بگیرند از امر به معروف و نهی از منکر آدمایی که تو فضای جامعه منهای امر به معروف و نهی از منکر روش پیدا میکنن این است که گناه میکنن بعد که گناه کردن گناه را کوچک میشورن چون گناه براشون متره نیست به گناه افتخار میکنن میبالن شادمانی میکنن به اصرار بر گناه میکنن این حرمت شکنی این جسارت بر انجام گناه نتیجه شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ماست. دیگه اون موقع محیط علمی و غیر علمی ندارد بازار و غیر بازار ندارد اداره و غیر اداره ندارد هر جا توانست رشوه میگیرد، افتخار می کند شادمانی می کند و میگه با این حقوق ها که زندگی اداره نمیشود، شود بنابراین باید رشوه گرفت تا زندگیمون به سامان برسد اینجاست که جامعه دینی ما، جامعه انقلابی ما، جامعه اسلامی ما باید رو این گونه مسائل دقت کند هفتمین اثر زیان ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه آرام آرام جزده الگوهای بیگانه می شود یعنی موقعی که ما الگوی دینی را به جامعه ارائه ندادیم به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر زیبایی های دین را برای جامعه ترسیم نکردیم دیگران با ماورهاشون با قدرت تبلیغاتیشون الگوهای بدلی را به جای الگوهای دینی در جامعه ما مطرح میکنند به رواج میدن و جوان ما نوجوان ما میانسال ما زن و دختر جامعه ما مبتلا میشن به الگوگیری و تشبه به بی بیگانگان که تعبیر رسول جرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من تشبه به قوم منهم ومن احب قوما حشر ماهم کسانی که تشبه به قومی پیدا میکنند خیابان یک کشور اسلامی را نگاه میکنیم قابل تشخیص نیست برامون که آیا این خیابان شهر غربی است یا یه خیابان شهر اسلامی و دینی است تشبه به قوم پیدا کرده تشبه به دیگران پیدا کرده عروسی ها بر اساس اون رفتاری که غربی ها دارن معاشرت ها بر اساس رفتاری که غربی ها دارن غربی ها موقعی که را میرن تو خیابون تو ماشین و اوتومبولشون حیوانات و با خودشون میبرن و میارن توی جامعه دینی ما هم رفتارها اینگونه میشود من تشبه به قومن فهو منهم. و من احب قومن حشر ماهم کسی که قومی را دوست بدارد تردای قیامتم هم با همین ها می شود اینا به خاطر این است که گاهی سکوت می کنیم گاهی توجه نمی کنیم گاهی می گیم ما را به کار دیگران کاری نیست و اگر تازه امره به معروف و از منکر توی جامعه مطرح شود. ادعی میگن جلوی شادی مردم را گرفتید ادعی میگن جلوی آزادی مردم را گرفتید ادعی میگن این سخنگره ها برای چی با های مختلف امر به معروف و نهی از منکر را محترمانه یا غیر محترمانه از صحنه جامعه اسلامی به دینی بیرون می کنند این فضای جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر درش متره نشود و بالخیر آخرین موردی که امروز اشاره میکنم این خیلی تکندنده است اجازی بید بگم و اون این است که اثر هشتم و اثر زیانبار ترک امره به معروف و نهی از منکر این است که جای معروف و جای منکر جا به جا می یعنی اون چه به عنوان معروف میشن آختیم به عنوان منکر و به عنوان منکر می شناختیم به عنوان معروف تو جامعه دینی ما مطرح می شود. این سخن من نیست جا به جایی امر به معروف و منکر کلام رسول نازنین اسلام پیانبر خاتم محمد مصطفی پیغمبر در یه جمله خطاب به یاران خودش کسانی که حالا در اون جلسه نشسته بودن یا داد در جای دیگر سه چار جمله دارد کیف بكم ایزا فسد نساء کم و فسق شباب کم چه حالتی پیدا خواهید کرد اون روزی که زنهای جامعه شما به فساد گرایش پیدا کنند جوانان شما به فسق و فجور تمایل پیدا کنند ولم تعمرو بالمعروف ولم تنها ان المنکر شما هم حالت سکوت به خودتون گرفتید امر به معروف و نحی از منکر نمی کنید اینا باورشون نمی شد فقیل الله و یکون ذالک یا رسول الله اصاسا ممکنه چون این اتفاقی توی جامعه دینی بیفتد که ما امر به معروف نکنیم نحی از منکر نکنیم و همچنین زنان تو جامعه دچار این آسیب ها بشوند جوانان تو جامعه دچار این آسیب ها بشوند پاسخ پیغمبر را نگاه کنید قال نعم و شر من داله. بله این اتفاقات میفته بلکه بالاتر از این و بدتر از این کیفه بكم اذا امرتم بالمون کرد و نهیتومد المرفول چه خواهید کرد؟ اون موقعی که شما به جای امر به معروف، امر به منکر کنید، به جای نهی از منکر، امر به منکر و به جای امر به معروف، نهی از معروف کنید. کار جامع به اونجا می رسد. یعنی اون چنان تبلیغ کردن ضد ارزش شده، ارزش و ارزش شده، ضد ارزش، تو جامعه از ضد ارزش ها تبلیغ می شود. بعد اینا باز تعجب کردن قیله یا رسول الله و یکون دالک اصاساً ممکنه روزی برسد که ما به جای امر به معروف امر به منکر کنیم و به جای نهی از منکر امر به منکر کنیم پیغمبر فرمود نعم و شر رون من دالک بله باراتر از این اتفاق می افتد کیفه بکم خیلی جالب است اذا رأيتم المعروف منکرن ول منکره معروفن اون روزی که با چشمانتون نگاه کنید که منکر معروف بشود و معروف توی جامعه دینی منکر خدایا به تو پناه میبریم امیدواریم جامعه انقلابی ما جامعه دینی ما این اولیات اسلام را مورد ملاحظه جدی قرار بدن روحانیت عزیز ما فرهنگیان ما بازاریان ما مسئولان ما و همه اقشار جامعه در هر جا هستند و هر جا می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند تا اون تعبیر صدق نکند که اسلام غریبانه متولد شد و نکند سیعود و غریبا اِنَّ الله يَعْمُرَ بِالْعَدْلَ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاعِزِ الْغُرْبَا و ینها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون پروردگارا ما را بیامرز به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما روح بلند رهبر فقیدمون آلی است اعلی بگردان به مراجع گذشته ما روح و ریحان عنایت بفرما برهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما به مراجع بزرگوار ما سلامت، عزت، عنایت بفرما به این مردم خوب ما مردم همیشه در صحنه ما خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما به خانواده های مکرم شهیدان صبر و عزت کرامت بفرما به شهدای عزیزمان این یادگاران عصر آشورا این یادگاران صدر اسلام خدایا عزت و عزت روز افزون عنایت بفرما ان احسن الحديث و ابلغ كتاب کتاب الله العزيز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 السلام علیک یا بنت رسول الله السلام علیک یا بنت ولی الله السلام علیک یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین برای الخلاين عج مین ونسلم نسلی و نسلم علی حبیبه و سیدنا و نبینا اب القاسم محمد علی اله الطیبین الطاهیرین اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الحاضي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك و امنائك في بلادك بهم نتبلع ومن ععدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر اصحابی اوسیکم بی الله و العمل فمن عمل بها فاز و غنیم و انجه و من ترکها حلت بهن ندامه بندگان خدا خودم به شما را به تقوی الهی سفارش میکنم رسول گرامی فرمود که یاران من من شما را به تقوای الهی و عمل به طاعت خداوند سفارش می کنم هرکس بدون عمل کند رستگار می شود وحرمن می گردد نجات پیدا می کند و هرکس سرباز زند از اطاعت الهی این انسان احساس پشیمانی می کند در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره کنم مناسبت اول حلول ماه شریف ذوالحجه را محضر مبارک شما نمازگزاران تبریک و تهنیت می کنم ماه بسیار پر است ماه زلهجه. آخرین ماه سال هجری قمریست ماهیست دارای برکات فراوان به خصوص دهه اول ماه زلهجه در روایات ما خیلی در رابطه با فضیلت اون سفارش شده دو تا تعبیر در قرآن هست که به دهه اول این ماه تفسیر شده فجر و لیالن عشر در روایات ما وارد شده سوگند خداوند به فجر و شبهای دهگانه مقصود از شبهای دهگانه همون دهه اول ماه زلحجه است و در آیه 28 سوره هج که در رابطه با فریزه بزرگ هج خدای متعال سخن می گوید اونجا میفرماید فرماید ایام معلومات در تفاسیر ما مقصود از ایام معلومات همین دهه اول ماه زیهجه است انشاءالله می دواریم هم صدا بشویم با زائران خانه خدا آنها در حال و هوای خوشی به سر برند ما هم حالاتی که می توانیم، اعمالی که می توانیم، دعاهایی که می توانیم در این ماه داشته باشیم، انشاءالله کوتاهی نکنیم در این ماه ما عید قربان را داریم، عید ازها را داریم که چقدر مورد سفارش قرار گرفته در بعضی از تعبیرات معصومین علیه مسلاة و السلام سوال می کنند که اگر هفت نفر شریک بشوند برای قربانی کردن چه حالتی دارد؟ امامی فرماید هفتاد نفر هم اگر شریک بشوند اون اجر و پاداش دارد یا رسول گرامی اسلام تعبیری دارد که من دو تا زب و قربانی میکنم یکی برای خودم و امتم و یکی هم برای خودم و خانوادم این همه مورد تأکید و سفارش قرار گرفته مستمندان برادران خواهران در این روز چشم براهن به برکت قربانی کردن شما که در حقیقت یک کار پسندیده و حسنه است انشالله عزیزانی که در کمیته امداد هستند خیرات و برکات شما را جمع کنند و بین فقرات توضیح کنند. از این کارهای ارزشمند الله استقبال کنیم خدا برکت به عمر شما خواهد داد ما الله اکبر اید غدیر را در ماه زلحج داریم عرفه را در ماه زلحج داریم با اون همه خیرات و برکات و نیایش هایی که هست و مناسبت های دیگری که در این ماه هست هفتم این ماه روز شهادت پنجمین امام و پیشوا وجود مقدس امام باقر علیه السلام است اون حضرت در سن پنجا و سالگی توسط هشام ابن عبدالملک مسموم شد و به شهادت رسید از جمله کلماتی که حضرت دارند که بیان جایگاه امامان ماست از اون جمله امام باقر خطاب می کند به جابر و الله یا جابر لقد اعتانی الله علم ما كان و ما هو كائن کائنون الى يوم القیامة. ما اون چنان بر برخوردار از علم و دانشیم که علم اون چه بوده و علم اون چه تا روز قیامت هست خدا به ما انایت کرده در تعبیر دیگری میفرماید اگر انسان واعظ نفس خودش نباشه که به حال خودش بسیر و آگاه نصیحت دیگران هم خیلی کارساز نیست باید انسان تلاش کنه خودش واعظ خودش باشد ملم یجعل الله من نفسه واعظا فانما باءظ الناس لن تغنی عنه شیئا مناسبت دیگری که داریم از روز دوم تا هشتم شهریور به عنوان هفته دولت نامگذاری شده که امروز از بیانات استاندار محترم نمازگزاران در رابطه با اقداماتی که شده در سطح استان و آنچه مربوط به هفته دولت بود استفاده کردند. از دو منظر می شود. به مسئله هفته دولت نگاه کرد یک منظر بحث شهادت شهید رجاعی و باهنر است که حقیقتاً یک الگوست شهادت این عزیزان رفتار این عزیزان برای دولت مردان ما بلکه برای همه مردم ما ویژگی این دو شهید عزیز ما خدا است ویژگیشون نسبت به قرآن و نسبت به اهل بیت نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و نسبت به رهبری نظام و استقلال کشور پایبند بودند روحیه عدالتخواهی در اینها موج میزد مردمی فکر میکردند مردمی عمل میکردند طبعیت اینها از حضرت امام و رهبر نظام اسلامی زبان زد بود اخلاقیات اینها حرکت بر اساس مصلحت نظام بر اساس حکمت بر اساس عزت در دستور کار اینها بود ما یاد و خاطره این دو شهید گرام قدر نظام اسلامی را گرامی می‌داریم اما جنبه دیگری که در هفته دولت باید مطرح بشود گزارش عملکرد دولت است در فرصتی است برای هم ارائه گزارش و هم ارزیابی عمل کرد من همینجا هم از مسئولان تقاضا میکنم و هم از فرهیختگان جامعه اصحاب رسانه منتقدین منصف تقاضا میکنم که ارزیابی کنن کارنامه دولت یازدهم را منتها نقدی منصفانه نقاط قوت گفته شود نقاط ضعف گفته شود و پیشنهادات خیرخواهانه ای برای ترمیم کاستی ها در دولت دوازدهم ارائه بشود این یک کار دینی ماست یک کار اسلامی ماست خب خوشبختانه دولت توانست از مجلس رأی اعتماد برای اکثریت قاطع وزرا بگیرد فرصت خوبی در اختیار وزرا قرار گرفته و من معتقدم همکاری خوبی بین مجلس و دولت رخ داده برنامه ششم مقام معظم رهبری روی آن تاکید و تکیه کردند باید اهداف و های برنامه ششم اهداف کلان که پیش شده مورد دقت قرار بگیرد همه ظرفیت ها را دولت ریاست جمهوری به کار بگیرند و گفته نشود گوش و کنار که امکان تحقق اینها نیست نه هم راجع به اشتغال جوانان، هم راجع به تحقق اهداف برنامه ششم وزرا با تمام وجود به صحنه بیان و اگر با توکل به خدا هم را باشد و اعتماد به وعده های الهی در کار باشد انشالله امیدواریم که اینها تحقق پیدا کند سرمایه اعتماد مردم باید سیانت بشود و سیانت از این سرمایه اعتماد مردم خدمته به مردم است ما اگر روزی به مردم خدمت کردیم توانستیم این سرمایه اعتماد را سیانت کنیم تو برنامه ششون و برنامه های دیگه مواردی هست که انشاءالله می دواریم رشد تکیه بشه و درشد اقتصادی هشت درصدی در سال این به عنوان یک حرکت می تواند باشد ایجاد اشتغال اون هم برای جمعیتی که مطرح شده و بینی شده در قانون و همچنین افزایش سالانه 20 درصدی صادرات غیرنفتی نفتی بهبود فضای کسب و کار اینا نکات برجسته ای است که انشالله مورد عنایت قرار بگیرد و مدیریت جهادی برای حل مشکلات اینها کارساز خواهد بود توجه به اقتصاد مقاومتی بر اساس درون برونگرایی ادالت عدالت بنیانی و مردمی بودن، و دانش بنیان بودن، اینها از ویژگی هایی است که ان مورد انتظار فساد ستیزی دولت باید تمام همتش رو به کار ببرد برای فساد ستیزی مردم گرایی، اجتناب از اسراف و تبذیر و ریختپاش اینا شرط موفقیت دولت و می تواند کارنامه دولت را کارنامه درخشانی جلوه بدهد این روزها که گذشت حال هوای کشور حال هوای شهید و شهادت بود آفرین بر شما مردم چقدر زیبا تجلیل میکنید چقدر زیبا تکریم میکنید به خصوص تجلیلی که از شهید محسن حججی به عمل آمد خانواده این شهید، پدر و مادر این شهید بر خودشون می بالیدن که فرزندی را تقدیم اسلام و انقلاب کردن فرزندی که در هنگام شهادت دیگه سر در بدن ندارد اینها نشانه این است که رویش های انقلاب ما کم نیست رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اون فرمودن سرمایه گذاری کنید روی تربیت دینی و انقلابی نسل جوان ما شایستگی در بین جوانان ما است از عزیزانمون بپرسید صف کشیدند لحظه شماری میکنند که اداء تکلیف وظیفه کنند مسئولان عزیز ما هم باید تلاش میکنند بودجه ها را هزینه ها را در جهت گسترش فرهنگ دینی و انقلابی هزینه کنند کار شایسته و بایسته این است که انشالله باید انجام بشود یه جمله ای هم اشاره کنم این روزها در شهرهای آمریکا، ایالتهای آمریکا اعتراضات جدی علیه نجات پرستی است و تعبیراتی که دستندرکاران آمریکایی مطرح میکنن خیلی جالبه رهبر اکثریت سنای آمریکا نسبت به ترامپ این تعبیر را به کار می برد میگوید که کار ترامپ و ادامه کار ترامپ با تردید مواجه است جمله جالب اینه که میگه ترامپ اصول اولیه حکومت داری را نمی داند و در تلاش هم نیست که یاد بگیرد چه شکلی حکومت داری کند این تعبیر است که این گونه افراد و سران آمریکا در رابطه با ترام مطرح می‌کنند یکی از مسئولان بلندپایه اطلاعاتی آمریکا تعبیری دارد و اون تعبیر این است که دسترسی به کد‌های تسلیحاتی آمریکا اون هم توسط فردی کوتاه فکر مثل ترامپ وحشتناک است اینا تعبیراتی است که در این زمینه مطرح می‌شن در عراق ما در عراق شاهده پیشرفت نیروهای ارتش و هشت و شعبی هستیم به الله موسیل آزاد کردن تلعفر هم به زودی انشالله آزاد خواهد شد اون بازموندگانی که در محاسرم بهشون اعلام شده یا تسلیم بشوید یا آماده کشته شدن. در پایان یادی کنیم از شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال 1366 و شهادت مظلومانه شهدای منا در سال 94 یاد و خاطره این عزیزانمون را هم گرامی می داریم یادی کنیم از مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر. حکیم که در حرم مولای متقیان به شهادت رسید و همچنین یادی کنیم از علما و بزرگان و مراجعی که این روزها سالگرد ارتحال آنان هست ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی حسنه و قناع ذاب النار پروردگارا ما را بیامرز و اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. مروردگار و بی امام راحلمون روح و رزوان عنایت فرما به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما خدایا به کسانی که به این مردم خوب ما صادقانه خدمت میکنند عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما این احسن الحدیث و عبل